السلام عليكم و الله. عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله على سيدنا و مولانا ابو المصطفى محمد. اللهم على محمد و الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ملاسي يا مولانا و الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا الهی انتقنی بالهدا و الهمنت تقوی و استعملنی به ووفقني و ارضا و وفقنی هی ازکا اللهم صل على السدیغه فاطمت الزکیه حبيب که و نبییک و امع حبائک و اسفیائک اللتن تجبتها و واخطرتها علان سائل عالمین توفیقی است امروز برای بنده که خدمت دوستان و سروران عزیز و گرامی باشم و در موضوعی که فرمودن اعرایضی را تقدیم کنم همه میدانید که حدیث بعد از قرآن مجید مهمترین منبع استنباط ماست و احتمام قدمای ما به حدیث از جهات گوناگون ثبت و ضبط شده در کتاب‌های مختلف که محل اطلاعتون هست و بسیاری از بزرگان ما با مشاغل علمی فراوانی که داشتند باز به لحاظ اهمیت حدیث احتمام داشتند به مقابله کتاب‌های حدیثی استنساخ کتب حدیث و ضبط و شکل و اعراب و اجازه کتاب‌های حدیثی علامه هلی رحمت الله علیه با این همه تعلیفات و این همه مشاقلی که داشته که می دانید به دلایل گوناگون فرزندش فخر المحققین در ایزاه الفوائد شرح قواعد جلد چار صفحه 474 فرموده است که من تهذیب شیخ توسی را دو بار پیش پدرم خوندم یعنی از اول تا آخر پیش استاد می مباحث رجالی فنی ضبط شک اعراب اون وقت میگه که میفهمید می لم ما و علیه تهذیب فی طریق الحجاز فی المره الثانيه فی سنه 32 و 700 و در سال 723 در راه مکه اون وقتی که تحذیب شیخ رو برای بار دوم پیش پدرم می‌خوندم این سوالا رو مطرح کردم میگه اینجور گفتم و پدرم اینجور جواب داد همچنین شخصیت‌هایی مثل شهیدستانی رحمت الله علیه مستعزید کل کافی رو یه دور با نسخه های خوب مقابله کرده الان آثارش هست تحذیب شیخ توسی رو چون نسخه اصل رو داشته به خط شیخ توسی نسخه اصل در اختیار شهید سانی بوده چند جام اس بوده و بعدم در اختیار پسری صاحب معالم بعد از اون دیگه مفقود شده معلوم نیست شده و تحذیب رو با پدر شیخ بهایی که شاگردش بوده مقابله کردن و ظاهرن همش یا قسمت عمده ایش رو پدر شیخ بهایی هم استنساخ کرده یعنی احتمام به حدیث اینطور بوده مرحوم محدث نوری در خاتمه مستدرک شکوه میکنه و ناله میکنه از اینکه در زمان ما، حالا در زمان ایشون که بیش از زمان ما احتمام بوده شکوه میکنه که در زمان ما احتمام به حدیث و مقابله و قرائات و تدریس حدیث کم شده در آخر مستدرک، آخر فائده دوازده هم. که توی این چاپ جدید صفحه ۳36 جلد نه میشه آخر فاعده ۱ فرموده است که و بلاغه من هم به هازلفن نهم کان و یقرون نجل بلاق من اول ال آخرهجل بلغه رو از اول تا آخر پیش و استاد میخونن و که از از صحیف کامله ال مشایق ال دقت و تحقیق فی الفاظها و اعرابه ها و اختلاف نسخه ها و روات ها و معانی ها کمالا لا یخفا من لهو ادنا خبره به احوالهم و معاصرهم حتی زبط و شکل کلمات هم مد نظرشون بوده اینجور نبوده که فقط خود جمله رو بخونن بعد بخونن با زور و ضرب ادبیات اعراب و ضبط و شکل کلمات رو بگذارن و یکی از نکاتی که در عصر ما قفلت شده حالا اشاره میکنم اینه در تصحیح متون حدیثی در زمان ما یعنی بعد از پیدایش صنعت چاپ قبل از چاپ که علما مقابله میکردند ضبط و شکل و اعراب هم رو نسخه خودشون می‌آوردن ولی بعد از پیدایش چاپ احتمام به تصیح کمابیش بیش بوده منتها اونی که قفلت شده نقل ضبط و شکل و اعراب کلمات تو نسخه خطی که به نسخه چاپی منتقل نشده در بسیاری از کتاب ها الا موارد نادر فقط اخیرا آقای شیخ سعدتار حفظ اولا در مشهد که یک بار نحض البلاغه رو با چار نسخه مقابله کردن یک بار هم با نسخه ابن سکون توی این کارها اعراب و ضبط و شکل نسخه های منتقل کردن که این خیلی مفیده یعنی ما باید بدونیم قدما اون حدیث رو که تلقی کردن با چه ضبط و شکلی با با چه دقتی اینجوریه که خودمون از پیش خودمون بخوایم با کمک قواعد صرف و نه اعراب بگذاریم این خیلی جاها مفیده حالا شما مراجعه کنید نحج البلاغه بر اساس نسخه ابن سکون که عتبه امیرالمومنین علیه السلام در نجف اشرف با همکاری کتابخانه تخصصی امیرالمومنین در مشهد چاپ کرده این ضبط و شکل نسخه ابن که در سال 600 نوشته شده یا 600 ابن سخون از دنیا رفته خیلی قدیمیه در این نسخه هست و خیلی جاها لازم و ب... لازم رو به میخوره می‌خوره مثلا در اون جمله در اون وصیت معروف حضرت امیر علی السلام بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم فرمودن الله الله فی لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم توی یکی از این نسخه ها ضبطی که هست هست لا يسبق در بعضی از ضبطها هست لا يسبق یعنی این نهیه یا خبر یه معنایی میشه که الان معنای معروف اینه میگن یعنی عمل کنید به قرآن مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما سبقت بگیرند ولی بعضی از زبط ها که تو نسخه ابن سکون هست هست که لا يسبق به سیغه خبری که احتمال داره همین هم درست باشه معناش اینه دیگران که به قرآن عمل نمی شما احتمام داشته باشید به عمل به قرآن به حال فرق است بین لا یسبق کم که تو بعض نسخه هست و لا یسبق کم و باید بررسی کرد که کدوم درسته دنبالش مرحوم محدث نوری فرمودن که مرحوم صاحب معالم شکوه کرده از کمی احتمام به حدیث ولی ایشون اصر ما را ندیده و اما قول صاحب المعالم ثم خلف من بعدهم الى اخره فلامري انه لو كان في عصرنا لعقام على الحديث المعاتم وبكى عليه بكاء الفكلا فان اهله الغوا حبل ادنى مراتب روایت ايضا على غاربها بها گذشتن کنار مسائل مربوط به حدیث و روایت را لاستغناهم انها زلفن بالمره و اکتفائه من السنه به ما یتعلق و به حاجت هم في الفروع من يوجد و في الكتب الفقهيه <تصفح> المعخوز من المعاخذ <تصفح> به واسطت او وسائط حالا اشکالی که از کمی اهتمام به حدیث پیدا میشه محدث نورین تو فرموده ما ما يتترق و في و فی المعخوزت من النسخ غیر صحیحت غالباً فی هذه تنقلات و تطورات من تحریف و تصحیف و زیاده و نقصان مما یختلف به المعنى فاحشا ما مالا يحصا یعنی از عدم اهتمام به حدیث كما هو حقه حقوه این مشکلات پیش میاد پس یکی از وظایف ما الان در این زمان اهتمام به حدیث و انایت داشتن به حدیث از جهات مختلفه خب حالا قدیم پیش استاد می خواندند و تثیح میکرد حداقل ما احتمام کنیم به تصیح برای اینکه یه نسخه که ما تصیح کنیم در هزاران نسخه منتشر میشه و هزاران نفر استفاده میکنند و به خاطر عدم احتمام ما به حدیث که ما هو و حق او پس از صنعت و چاپ نشک تصفیفات و اشکالاتی پیش اومده که بنده نموناهایش عرض بکنم فقط برای این که معلوم بشه که خیلی بیش از اینها باید احتمام داشته باشیم به امر حدیث لابد مستحذری در خطبه اول نحج البلاغه در حدود 97 درصد نحج البلاغ های چاپی الا همین دو سه ای که سالهای اخیر مقابل شده مثل نسخه های قیص اتار و امسال اون در خطبه اول نهج البلاغه که معروفترین کتاب حدیثی ماست و پرتیراجترین کتاب حدیثی یعنی نظر چاپی فکر نکنم کتاب حدیثی دیگری غیر از نحج البلاغه اینقدر چاپ شده باشه بیش از هر کتاب حدیثی چاپ شده تو خطبه اول نهج البلاغه یک کسی ابتدا یه جمله اضافه کرده بعد هم حالا من چه اضافه کردنش هم ارز میکنم بعد هم این اضافه توی همه چاپ ها منتقل شده و در عین حال که در نسخه خطی معتبر نهج بلاغه ابدا نیست. در شروع قدیمی نهج بلاغه نیست یعنی قبل از صنعت چاپ مثل شعر ابن عبدالحدید ابن میسان بقیه شهرها توی یکی دو تا چاپ آمده، بعد هم بقی... بعدی ها به تقلید از قبلی ها این جمله رو اضافه کردن با اینکه در هیچ نسخه نیست. و یه ناسخی به ذوق خودش اضافه کرده که ذهرش هم اشتباه بوده حالا ع میکن خدمتون در خطبه اول نش بلاقه میخوانیم و من وصف الله و صبحانهو فقط قرنه و منقرو فقط تنناح و من تنناحو فقط جزه و من جزح فقط جهله این یه فقره اول خطبه اول نش بلاقه. فقره بعدی و بند بعدینه فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه بند بعدی ومن اشار اله فقط حده ومن حده فقط عده فقره و بند بعدی ومن قال فی ما فقط زمنه ومن قال علامه فقط اخلا منه اینی که الان خوندم درست و مطابق نسخه معتبر خطی و شروع قدیمی نه جلبلاغه چون در فقره اول دو سه جمله خالی جمله قبلی شده شرط جمله بعدی یک کسی مننده نفسه یه جمله دیگه همجوری درست کرده اینجا اضافه کرده ببینین فمن وصف الله و سبحانه فقط قرنه بعد و من قرنه فقط سنا یعنی فقط قرنه جمله قبلی اومده شرط جمله بعدی شده و من سناهو فقط جزعه همینطور طور و من جزعهو فقط جهله اون وقت چون در بند بعد و فقره مستقل بعدی حضرت فرمودن و من اشاره ایله فقط حده یه ای ناسخی اینجا فکر کرده لابد یه جمله افتاده اومده اضافه کرده و من جهلهو فقط اشار ایله و من اشاره فقط حده با اینکه من اشاره الیه خودش فقره است و مستقل و همچین جمله تو هیچ نسخه معتبر خطی نیست شروع نحجدالاغه معتبر نیست و معلوم نیست از کجا این که اضافه شدنش همین را که عرض کردم متن باید بررسی کرد اولین بار چه کسی این جمله رو اضافه کرده حالا شروع معاصرین رو شما نگاه کنید بدون توجه به اینکه اصلا این جمله هست یا نیست کلی داد سخن دادن در شرح این جمله ای که اصلا نیست از کلام از کلمات از امیر السلام تو نقل بهارم نیست یعنی فقط نسخه نهج البلاغه نیست این خطبه هر جای دیگه نقل شده غیر از نهج نیست درش این یه کمی احتمام به حدیث که یه جمله اینجوری تو نحجل بلاغه اضافه بشه حالا بعضی تصیفات تو نسخ چاپ سنی هست که اون شایع و آم نیست اون مثلا حتما مستحذری تو چاپ صبحی ساله و احتمالا عبدو و متن نحجل بلاغه در اون جمله های بخش سبوم نحجل الله فرزاللهولیمان تطهیرن من الشرک و سلات تنزیحن من الکیب آخرش ازت فهموندن ولی امامه نظامن للامه اونجا تو چاپ سوبیزال امامت شده امانت. احتمالاً عبدو هم همینجوری باشه. این تو بعضی چاپ‌هاست، همه یه چاپ ها نیست. و عجیبه اینه که نحز البلاغه ابن عبدالحدیث که خودش شرح میده را امامت رو شرح میده و پیداست متن مورد نظرش امامت بوده. این متنی که با شرح نحز البلاغه ابن عبدالحدیث اخیراً چاپ کردن، یعنی بالای صفحه چاپ کردن، اونم بالاش امانت گذاشتن. با اینکه شرح ابن عبدالحدیث خودش امامت. حالا این تو بعضی نسخه‌هاست، تو همه نسخه‌ها نیست. یا بعضی از جملات هست تو بعضی از نسخه غیر معتبر هست ولی تو نسخه معتبر از جمله همینایی که عرض کردم آقای قیس حتار چاپ کرده این نیست درش یک چاپ بر اساس 4 نسخه معتبر یک چاپ هم بر اساس نسخه ابن سکون در نامه حضرت امیر علی السلام به عثمان بن حنیف اونجا که میفرماید ولی خستمن عرض ها برن چیزی من از دنیا نگرفتم یه جمله هست تو خیلی از نسخهای معتبر نیست من بررسی نکردم باید بررسی کرد این از کجا اضافه شده یا منشأ این اختلاف چیه یه جمله است که شاید با فساحت و بلاغت حضرت هم نسازه حضرت میفهمید و اینا لا عمرال كلام و فینا تنشبت اروغو و, و علینا تحدلت قصونه به حال تو خیلی از نسخهای معتبر این نیست بررسی کنیم چطور این جمله اومده اونجا هست که و ما منها الا که قوت اتان دبره یعنی از دنیا من قوتی نگرفتم چیزی نگرفتم الا به اندازه قوت و خوراک اتان دبره دبره یعنی حیوانی که پشت زخف شده باشه اتان هم یعنی ماده اولاق یعنی آیا تناسب داره همچی کلامی با اینکه که انا لا کلام خیلی بلیغتر و فسیحتر از این حضرت مطلوبشون رو بیان میکنه هیچ بعید نیست دستهایی که گاهی اضافه میکردن کم میکردن نسخه ما دست هایی بنی اومیه عرصفت حضورم براتون ناسخین دشمن ما حتی این نسخه که ابن سکون هست و آقای قیص اتار چاپ کرده اونجا میگه این نسخه دست یه ناسبی بوده یه جاهای... یعنی یکن نسخش یه جاهای یه جملات رو کمازیاد کرده و مثلا علیه السلام رو کرده کرم الله و یعنی جورا نبوده که نسخه ها همش دست شیعه باشه بعید نیست دست ورده باشند. مثل بسیاری از روایات متلاق بودن امام حسن علیه السلام که آیت الله معتقد است که این رو بنی امیه اضافه کردن و همچنین اس جعفر مرتضی و دیگران به حال این جمله تو بسیاری از نسخ معتبر نحوه بلاغه نیست ولی الان تو صبحی ساله و نسخهای رایج ما هست و بعضی از مترجمین که بر اساس همون نسخ ترجمه کردن اینجا رو ترجمه نکردن دیدن خیلی معنای خوبی نداره غیر از اینها مثلا در کافی ما در وسایل ما گاهی اتفاقاتی افتاده که حالا کسانی که میخوان اهتمام به ورزند به تصحیح متون خوبه که این نکته ها رو مد نظر داشته باشند برای فهم درست حدیث یه نکته ای که چه بخوایم حدیث رو تصحیح کنیم و چه بخوایم برداشت درست بکنیم از احادیث این نکته خیلی مهمه ببینید الان که دسترسی به همه منابع آسانه یعنی میشه همه نسخای خطی رو به نوعی گرد آورد و همه کتاب ها رو مراجعه کرد <تصفح> الان دیگه ما معذور نیستیم که احتمام چندانی به حدیث نداشته باشیم یا به یه نقل در یه کتاب حدیثی اکتفا کنیم احادیث هم مضمون را هم از کتب اهل سنت هم از کتب زیدیه دیگران همه رو باید کنار هم بذاریم تا واقعیت مطلب دستمون بیاد و ابهامات حدیث برطرف بشه ببینه الان من یه حدیث از کافی شریف میخونم که این رو مرحوم صاحب وسائل چه خور رو نقل کرده و بعد یه حاشیه ای زده حاشیهش هم میخونم و بچش رو عرض میکنم خدمتتون. این حدیث رو ببینید در کافی در کافی شریف جلد 6 این چاپ مرحوم قفاریه نه چاپ دارال حدیث جلد صفحه 834 کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 22 حدیث اینه عن جهم ابن حمید قال قال علی ابو عبدالله عليه السلام انا کنته حضرت از من پرسیدن کجا بودی؟ لاود دیروز کجا بودی؟ فزنن تو انهو قد عرف الموضع فهمیدم که حضرت متوجه شده من کجا رفتم فقول تو جو یا وزری تراشیدم ناچار شدم فلانی منو به این دامن انداخت جول تو فداک انی تو و مررت به فلان فاحت بسنی فدخلت الی داره و نظرت الی جواریه منو برت خونشونو نگاه کردم به کنیزاش حضرت فرمودند فقال علی ذاک یا ذلک مجلس لا ينظر الله الی اهله این مجلسیه که ماظو خداونده متعال تا آخر حدیث امین الله و جل و که و مالک این حدیث در کافی همونطور که از کردم کتاب الاشربه باب القنا حالا شما ببینید از کجا این حدیث استفاده میشه که ارتباط با قنا داره شیخ راملی هم همین ایرادو گرفته میگه مرحوم کلینی این حدیث رو در باب قنا آورده ارتباط با قنا نداره ببینید حضرت فرمودند ان کنته فقول و قلت و فداک انی کنت و مررت و بفلانن فدخل تو الى و نظر تو الى جواره شخور خورا عامل تو وسائل زیل این حدیث فرموده از هازالا تسریح فیه بالقنا اسمی از قنا نیست لیکن فهم من هل کلینی من هل کلینی ازش غنا رو فهمیده فا او فی باب القنا و قرینه این که این مربوطه به قناست ایشو این تو فهم قرینتهو انهو لا وجهل تحدید لولاهو اگر قنادر کار نبود چرا حضرت اینقدر تهدید فرمودن لان النظره الی الجواری باذن سیدهنه جایز نظره به کنیز به اذن مولاش که جایزه وقد اذن راوی خود مولا هم که اجازه داد به راوی پس این دیگه این تهدید حضرت که فرمودن زاک مجلسون لا ینظر الله الی اهل تا آخر حدیث این وجه چیه این تعجب شی خور ولی در این حال فرموده کلینی اینطور این فهمیده این حالا همین حدیث رو ما در منابع دیگه میبینیم منابع ارزی نه تولی یعنی اون منابعی که از کافی نقل کردن نه منابعی که خودشون هم ارز کافی از مصادر اولیه نقل کردن ولو منابع درجه 2 یا 3 باشه ولی میبینیم اینجا مشکل ما را حل می‌کنه دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری که تقریبا معاصر کلینیه 363 ظاهرا وفات قاضی نعمان 329 وفات کلینی تقریبا معاصر حساب میشن همین حدیث را با هم این سند دعایم الاسلام دو جا نقل کرده وقت یه جمله کوچیکی داره که وسط حدیث اون جمله از نسخه کافی افتاده ولی تو دعایم الاسلام هست و این قرینه میشه که تو نسخه کلینی هم بوده حالا در نسخه بعدی افتاده در چاب افتاده یا در نسخه بعدی افتاده با حدیث علتشیه حدیث تو دعایم الاسلام اینه <تصحنت> حضرت فرمود لرجل من اصحابه اینکن کنتا امسه الو توی کافی بود حضرت فرمودن ان انا کنته. این داره اینه کنته همسه. قال الرجل فزنن تو قد عرف الموزه الذي كنت فيه توی کافی بود فزنن تو انهو قد عرف الموزه. قل تو جوهل تو فداک. در اسلام کافی هم همین بود. فقول تو جوهل تو فداک. تو به فتعلق بی و ادخلنی داره. تو کافی هم بود مرر تو به فلان فهده بسنی دخل تو الاد داره. و اخرج علیه جاریتن لهو قنت قننت همون جاریه مقنیه بود و غنا خوند. این اخرج علیه جاریتن فقنت این تو نقل کافی افتاده. ولی تو نقل دعایم الاسلام هست دو جاش هم هست. این یه که خوندم جای دیگش هم هست که و ادخلنی منزله و اندهو جاریتون تذرب و تغنی یعنی این اندهو جاریتون تذرب و تغنی توی روایت دعایم تو نقل دعایم هست در نقل کافی اینی که به ما رسیده نیست ولی به قرینه این که مرحوم کلینی همین حدیث را در باب قناع آورده معلوم میشه در نسخش بوده در سالهای بعد تو اسنساهای بعدی افتاده یه جایم از صحبتهای مرحوم ابوالماجد اصفهانی صاحب وقایع دیدم الان یادم نیست آدرسش کجاست شاید توی وقایع باشه که ایشون فرموده نسخه هایی که به دست ما رسیده بعضی جاها نسخه های کتاب های دیگه مثل دعائم از نسخه کافی صحیح‌تره یعنی نباید به یک منبع و یک مد نگاه کرد و اکتفا کرد یه مورد دیگه البته این به اون اهمیت نیست ولی اینم از باب این که میخوام عرض کنم بعد همه مصادر رو نگاه کرد به یه مصدر اکتفا نکرد باز در کافی هست که امام باقر علیه السلام فرمودن نسخه کافی اینه ما تل ولید بن مغیره فقالت ام سلمعه زوجه رسول خدا از رسول خدا اجازه گرفت ان آل المغیره قد اقاموا مناحتا فاذهب اليهم برم مجلس ترحیم ولید بن مغیره تو کافی اینجوره ما تل ولید بن مغیره و رسول خدا ازن داد فازن الله ها فلا سیاب سیابه اخر حدیث فن ندبت ابن عمها بین یدی رسول الله این چند شعرم ام سلمه در رسای ولید ابن مغیره خون انا الولید بن الولید, الولید, الولید فتل اشیره این در کافیه در زیل این حدیث شریف هم مرحوم علامه شعرانی هم مرحوم محقق توستری صاحب قاموس رجال هر دو فرمودن که ولید ابن مغیره درست نیست ولید ابن مغیره که مشرک بود اصلا معنا نداشت رسول خدا اجازه بده که ام سلمبه بره تو مجلس تحریم شرکت کنه درستش ابن الولید ابن الولید ابن مغیره است یعنی این ابن اینجا افتاده درستش اینه ما طل ولید ابن الولید ابن المغیره پسر ولید نه ولید ابن مغیره پسر ولید ابن مغیره هر دو فرمودن از نظر تاریخی هم درسته وليد بن مغیره عم ام, ام سلمه بود ولی اصلا مسلمون نشد معنا نداشت که توی مجلسش بره خب همین حدیث تو کافی همینطور که عرض کردم ولی در تهذیب تحذیب شیخ توصی با اینکه معمولا معروفه که ضبط کافی بهتر از ضبط تحذیبه تو تهذیب اینجا دقیقاً اینطوره ما ته ابن وليد بن مغیره یعنی همین یک کلمه ابنی که تو نسخه کافی افتاده اینو شاهد آوردم بر این برای اینکه برای تصحیح درست احادیث باید همه منابع حدیثی و همه نقل ها رو دید یه نمونه دیگه هم از این باب هست باز کافی هست و کتاب های دیگه عرض کنم نمیدونم چقدر وقت داریم دیگه ها این دقیقه سریع جمعش میکنم انشاءالله باز در کافی هست که یونس از امام رضا علیه السلام سوال میکنه سالتال خراسانی علیه السلام به امام رضا گاهی خراسانی میگفتن و ذکر اینالعباسی زکر انکت ترخ صفل به امام رضا گفتم که عباسی یه مطلبی از شما نقل کرده بعد مرحوم آقای قفاری رحمت الله علیه که خیلی نقش مهم می داشت در تصیح متون حدیثی و خدمت بسیار زیادی کرد به متون حدیثی شیعه و بزرگان شیعه مثل مرحوم آیت الله میلانی مرحوم آیت الله گلپایگانی خیلی تشویقش کردن آقای قفاری و بر این کار آقای قفاری در پاورقی فرموده عباسی نمیدونیم کیه تو بعضی نسخه‌ها هم و ظاهرا نه رجل معروف من العباسيين لهو شأن في دولتهم فر در راوی اخفاء اسم ل مصلحتن یا آدم معروف در عباسی ها بوده دولت عباسی راوی اسمش رو پنهان کرده به خاطر اینکه حضرت بعدا محکومش کردن و فهمودن کذبه زندیق نمیخواد اسمش رو بیاره خب همین حدیث در کافی با همین سند و با همین متن هم در اویون اخبار و رضای شیخ صدوق هست هم در رجال کشی هست من تا در اون دو نصد در اون دو نقل تصریح شده این نه هشامبن ابراهیم العباسی یعنی عباسی تنها نیست توی عیون اخبار رضا و رجال کشی داره که فقلتو یا سیدی این نه هشامبن ابراهیم العباسی حکا انک یعنی مراجعه کنیم با اینکه که اویون و اختیار نسبت به کافی میشه به درجه دوم و اون اهمیتو نداره در این حال نقل این دوتا این توضیح ها داره که کمک رو یعنی مشکل رو حل میکنه. از این نمونه ها زیاد آخرین نمونه رو عرض کنم و بعرایزن به خاطر همین جهت که ضبط و شکل احادیث رو ما بیش نداشتیم بعضی احادیث به شکلای غیر صحیحش پیش ما معروف شده و الان آیت الله شوری حافظ الله شوری زنجانی اعتماد زیادی به های فعلی که تصحیح نشده نمی‌کنن دوره تهذیب خودشون رو با یه نسخه خطی معتبر مقابله کردند و همه اختلافات رو نوشتند هنروز هم گاهی وقت‌ها یه حدیث که احتمال داره تأثیر داشته باشه در فتاوا یه بار که به بنده فرمودن بره کتاب طول عمر عشی این رو نگاه کنید ببینید تو نسخه قدیمی تهذیب نسخه 328 ظاهرا این جمله چه وارد شده اینقدر باعث احتمام داشت به خاطر همین جهت که ما اهتمام نداشتیم نمونه‌های زیادی از احادیث خلاف اون که بوده پیش ما مشهور شده حالا یکیشو کنم که حکایت مرحوم الله روزاتی رحمت الله علیه هم از ذکر خیری از هم شده باشه مرhum آقای روزات میفرمود که مکه مشرف شدم توی جلسه ای که علمای اهل سنت بودن به مناسبتی من گفتم این حدیث ابوبکر نحنو معاشر الان بیا لا نورس تا گفتم لا نورس همه جای مجلس همه داد زدن لا نوره لا نوره لا نورس کدومه الان بین ما معروف نحنو معاشر الان بیا لا نور رس حتی اون رساله مرحوم شیخ مفیدم که به این حدیث هست به همین اسم چاپ شده این رو جلدش هست رسالتون قول نحن و معاشر الانبیا لانه ورس با اینکه درستش لانورس هم تو کتابای سنی هم کتابای شیعه هم مرحوم علامه مجلسی دیگران فهمیدن لانورس نرس درسته ابوبکر می‌خواست بگه که رسول خدا فهمیده است کسی از ما ارث نمیبرد نحن و لانه رسو کسی از ما ارث نمیبره بحث توریس نبود که اصلا توریس یه معنای دیگه داره توریس عبارت از این است که کسی یه نفری که وارث نیست جزء ورثه قرار بده یا بگه به فلانی هم ارث بدید مثل اون جمله حضرت در نهج البلاغه که بعد از ضربت خوردن از ابن ملجم فرمود که الله الله فالجيران که رسول خدا و رسول خدا مازال یوسی بهم حتی زنن بهم حتى ظنننا انه سيورثهم یعنی زنن نا که ممکنه همسایرم رسول خدا ارث بر حساب کنه مقصود این که این مثلا یه نمونه با اینکه علمای ما مثل مرحوم مجلسی و دیگران تصریح کردن توی های اهل سنت هر جا نقش شده هدف ابوبکر هم این لا نورس بود اصلا هدفش با لا از اثبات حضوران برایتون که جمع نمیشه یا حالا موارد دیگه حدیث معروف از نجل مخفون و حلک المسقلون مخف یعنی کسی که بار خودش رو در دنیا سبک کرده مسقل کسی که بارش رو سنگین کرده توی نص البلاغه باز نامه حضرت به امام حسن مجتبی هست و علم ان امامکه عقبتا کودن المخفف فيها احسن حالا من المسقل ولی در منابع ما و نوشته های خیلی از بزرگان ما دیدم که میخوان نجل مخففون مثلا نداریم نجل مخففون اونی که هست نجل مخففون و هلک المسقلون این هم با اجازه ایشون آخرین حدیث را هم بخونم و قرایزم خاتمه بدم این توی وسایل شیعه همه چاپ‌های وسایل یعنی هم چاپ سنگی سه‌جلدی قدیمی هم چاپ بیست جلدی مأهوم ربانی شیرازی و هم چاپ سی جلدی فعلی آل البیت توی وسایل حدیث اومده اونم باز به خاطر اینکه درست مقابله نشده ببینید جملات چقدر کم شده صحیح حدیث اینه که الان میخونم تو تفسیر عیاشی و تو بهار متن صحیحش اینطور اومده کان ابلیس اولمن تغنّا و اولمن ناح نیاحت و اولمن حدا خودی که برای شطور بانان برای شطور بخونن که تون بره لما اکل آدم من شجر تغنّا فلمما حبط حبط آدم الالعرض حدا همون حودی فلم مستقر علالعرض ناح یو ذکروه ما فل جنّه صحیح حدیث اینه حالا تو وسایل همه چاپا شما نگاه کنید این طور شده فلم ما حبت حدا شده فلم ما حبتت حواء حدا که به معنی حدو خوندن شطور هست شده حبتت یه هم به حبته اضافه شده فلم ما حبتت حواء الالعرض بعد ادامه شم دیگه نایمده این به خاطر همین مراجعه نکردن به همه این حدیثی و توجه نکردن به زوابط امیدواری ما این توفیق داشته باشیم که احتمام ویژه داشته باشیم به حدیث وقتی ابن عبدالحدیث سنی معتزلی در شرح نسل بلاغه میگه که این خطبه رو من تا حالا بیش از هزار بار خوندم یکی از خطبای نسل بلاغه رو و هر بار نکته جدید یاد گرفتم ما که حالا شیعه امیرالمومنین هستیم ان شاء الله توفیق بدنیم تا حتی یک بار نسل بلاغه رو دقیق بخونیم حالا پیش استادش به جای خود مطالعه امیدواریم اهتمام به حدیث و تصیح حدیث و نشر حدیث بیش از این باشه راجب بصائر و خدمات آقای محمودی حفظه الله که استاد ما هستند و از محضرشون بارها بهره من بودیم و بهره من هستیم راجب بصائر و اهمیت کارشون و محتوای بصائر حضرت آی سبحانی و آقای محمودی حفظهم الله که هر دو استاد من هستند توضیحات کافی و وافی خواهند داد و سلام علیکم و رحمت الله